ارفان دو بخش کلی تر دیگری رو هم شامل میشه ارفان کمال و ارفان قدرت در ارفان کمال بحث تعالی انسان پیگیری میشه بحث اینه که انسان به چه منظوری خلق شده و روی زمین به سر میبره فلسفه خلقت انسان چیه و انسان به چه سمتی میره و از این ره گذر دنبال ایجاد کمال و تعالی برای انسان هیچ هدف دیگه نداره و یک عرفانی هست که عرفان قدرت اگر میگیم عرفان به خاطر اینکه درون هم ابزاری نیست اما اون چیزی که در عمل به دست میاد قدرته و این قدرت ممکنه مرد سو استفاده هم قرار بگیره نفوز در دیگران چون که بدون ابزار صورت میگیره متعلق به دنیا عرفانه. اما به چه منظوری میخواد ازش استفاده بشه؟ در ارفان کمال دنبال این گونه قدرت ها نیستن. و عرفای خودمون هم این مسئله رو بنبان شیرینی هایی تلقی کردن عرفان قدرت را مولانا میفرماند که هست حلوا، خوراک کودکان صبر باشد موشتهای زیرکان هر که حلوا خورد با رود هر که صبر آورد گردون بر رود این قدرت تشبیه شده به حلوا که شیرینی داره و ممکنه یک راهرو رو یک سالک رو جذب خودش بکنه ولی وقتی حلوا خورده شد ممکنه شیرینیش فرد رو بگیره و از پیگیری کمال منصرف بشه و به هر حال انحرافی در مسیر او به وجود بیاره انسان این نیست که از عرفان جدا باشه چرا چون کاری نیست که مجبور نشیم در مده اون کیفیت رو تعریب بکنیم یعنی کنترل کیفی همه چیز به دل انسان برمیگرده اما تا عقل نباشه عشق معنی نداره و تا عشق نباشه این طرف انسان مفهوم پیدا نمی‌کنه. انسان صرفا میشه روبوتی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 که داده شد در مورد عرفان که دنیای بیابزاری هست لذا در واقع این عرفان شناسایی حلقه مختلف این حوزه رحمانیت رو در واقع مورد بررسی و مورد برداری قرار میده. این عرفان متکیب وصله متکیب اتصاله چیز چیزی نداره که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 اون رحمانیت عام الهی در اختیارش هست و میتونه استفاده کنه و انسان در واقع برای این روی زمینیست که به خودش زجری بده بلایی سر خودش بیاره شکنجهی به خودش وارد بکنه کافیه که مشتاق باشه وقتی که اون اشتیاق وجود داشت حکمت الهی ایجاب میکنه که طبق قانون باستاب فرد مزد اشتیاق خودش رو بگیره این مزد اشتیاق همون کمال همون تعالی است همون رسیدن به ادراکی به رسیدن به حال اشراق و روشن شدگی است حالا اگر در جایی هم کسی رو تخت میخداری میخوابه شاید اون تخت مختار وسیله است که او اشتیاغشونشون میده ولی اون تخت آمل اون تخت اینه که بگن چون خوابید روی تخت الا بعد به آگاهی و ادراک و اشراق بودن خیر و مستلزم این هست که اون اشتیاق در اون دل در اون قلب وجود داشته باشه و به صرف بحث تخت میخدار هر کی از رو تخت میخدار بخوابه به اون آگاهی میدن همچین چیزی نیست